بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله وأسكنه ففي حجناته عن حمران مولى عثمان بن عفان أن أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بمضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما لهما ثلاث مرات ثم أدخل ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض والسنشق والسنسر ثم غسل وجهه ثلاثة، ويدين إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضع نحو وضوء هذا وقال من توضع نحب وضوء هذا ثم صلى ركعتين. لا يحدث فيه ما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وكما قال صلى الله عليه وسلم إذا حديثك محمد بحث بزو حديث عثمان رضي الله عنه خلفية سبوم المؤمنين عثمان بن عفان ذنورين که با دوتا از دختران رسول الله صلی الله علیه و سلم اززواج کردن رقیه و امو شخصی که رسول الله از شرم می چون فرشتگان از رسمان شرم می که یکی از شهدای اسلام به شهادت رسول صل الله صلی الله علیه و سلم قصبه یا احد فإنکا فان علیکا و یکی از دوتا عثمان و اولیش که بود مربود رد الله عنه و و بفرصدیق بس به گواه خود الله عثمان رضي الله عنه یکی از شهدات حکم دالن یک شخص شهیده یکی از احکام سرعی که جایز نیست مگر با نفس سریح یعنی یک شخصی کلو در جنگی کشته میشه آیا جایزه که بشه بگیم شهید امام بقاری میگه: بگیم بابو لا يقال لکلان شهيد. يكاد ابو باباك در كتاب السحيش برمان بخاري باب بفلان شخص بحالات معين بفتن نميشه شهيد إلا من حكم الله عليك بالشهادة أو كم وقعه مجرد انك خدا و رسولش بفن تعيين بكونن كفلان شخص شهيده اما در غير انسورات درستي بالدليل امره قصي اون شخصي نايدر في رول افتبو در سيناش بعد رسول الله بفتن كيف جهنميانه تا تعجب کرده این نیده در میشه، بعد اصلا بیان میکنن که بله این شخص نیده را با دست خودش فرو میبره فشار میده روش تا اینکه کشته میشه در اونجا به خاطر همین سوغذر جهنمیتش میدن. نه بر شهادتش چون شهادت یعنی اینکه دیگه عذاب قبلی نداره عذابی نداره ولی وقتی که حکم عذابش رو دادن یعنی چی یعنی اون حکم ازش میشه، ولی شهادت شهادتش منتفی میشه پس حکم به بر برمیده به وحی رسول الله. عثمانم یکی از شهاده و یکی از عشر مبشره بالجنه که رسول الله گواه دادن و اعلام کردن که یکی از ده نفری که وارد بهش میشن که از عثمان. رضی الله فعال. سومین خلیطه مؤمنان و یکی از بزرگترین اصحاب. خب، که در بحث عقیده گفتیم که صحابه می ما کسی را بعد از رسول الله از عربات بهتر نمی بعد از عربات از عمر بعد از عمر رضی الله عنه عثمان پس عثمان سومین شخصی که بعد از انبیا در اسلام سومین برترین اشخاص به حساب می از خلافای مسلمان ها خب حمران مولای عثمان من میشه مولا به برده آزاد شده گفته میشه برده ای که آزاد بشه مثلا از این برده رو خریده یا در جنگی به دستش اومده یک شخص بیاد آزادش بکنه با پولش یا بالاخره بكره آزادش بکنه یا مال خودش بده که آزادی این شخص میشه مولا حالا هر که ما موالی دیگری داریم ولی اصل بر اینه که این مولا وقتی گفته میشه یعنی این شخص آزاد آزاد شده ی فلان شخصه حمران میگه که حمران مولای عثمان میگه که رآ عثمان ما یه چیزو سوجه میکنیم در این حدیث میبینیم که رضی الله عنها در بحی عثمان بن عفان نمیارد میگه عن حمران مولا عثمان بن عفان نمیگه رضی الله عنه انه رآ عثمان رضی الله عنه این دقات محدثی میره چرا؟ تا اینکه که زمیر به پدر عثمان بر نگرده چون سدرش بر شرک از دنیا رفته به خاطر همین از دقت محدد این چین که بیدی که حمران مولای عثمان این عفان گفته که دیدم عثمان با الله فعال خب دیدم که عثمان چیکار کرد زعب وضو این وضو با فتحی روی واف آب. وضو آب و با قبلا گفتیم اسم فعله فعله وضوع برمتن شستن سونت و دلت و مزمده و سنشاق و شستن پاها بهش میگن چیم؟ اما آب بهش میگن؟ وضوع آبی که آش میخوام وضوع بگیریم بهش میگن؟ وضوع اصل وضوع از وضاعه وضاعه از نورانی و نور میاد که خود دلالت بر پاکی و تمیزی میده دلالت بر پاکیزگی و تمیزی خب انه را عثمان دعا بوضوئن دعا بوضوئن یک مسئله دیگه است یک از حکمت ها و اونم یک از مسائل شرعی که جایز در وضو گرفتن از کسی دیگر کمک بگیریم دیدید بعضی از پیرمرد ها قبول نمی کنن کسی آبرودیشون بریزه نه خودم با آبرود دست خودم بریزم پس در اینجا عثمان رجل عنتي کمک میگیرن در وضعی گرفتن از این دی؟ از دیگه درخواست میکنن که آبی بیارن که چی؟ وضعی خودشون رو انجام بدن خب درخواست کنه که آبی بیارن آهمین یکی از وسائلی هست که کمک گرفته شده یعنی فرقی نمی کنه که اون آب ریخته بشه یا آب برای شفت اوورده بشه کمک جستن در یک عبادت یک عبادتی میخواست انجام میگیره حالا، چه آب اون وضو بیا نازش بچه اون آب رو درتش بریزه حالا بعدش میگه فاسرق علی یدی من انائه فغسل افرغ علی یدی فافرق على یدی من انائه فقتله ثلاثه مرات خب در اینجا استحباب شستن سه بار و اجماع روش اجماع روش هم تو من منظر نار کنه اجماع در که شستن سه مستحب واجب نیست و یکی از چیز چیزهایی که هر در این حدیث هست سنت سنتیت شستن دست قبل از وجود. حتی که بعض از علمات شبانی در ترجیح میدن بر وجوبش لیکن واجب وقتی گفت که چی؟ که دسته این قضا احد نومه کسی که از خواب دار شد اونجا واجبه ولی اینجا واجب نیفینی مطلقا اگر از غیر خواب نباشه واجب نیفین از همطور که اجماع نقصده یعنی هرچند که بعضا مخالفت کردن با این اجماع ولی خب حد بگیم جمهور برای نکشی شستن دست ها مستحب قبل قبلت و همینه در صورتی هم گفتی مقیدش کردی در صورتی کشی از خواب شب نباشه یک کسی دیار شب یک ما بیانش بیان که از اونا بعضی‌ها دار ما گفتن تعبدیه بعضی گفتن تعلیبیه بعض ما گفتیم که در بحث تعبدی و تعلیلی حالا هر در مسئله خود حدیث بحث تعلیبیه فإنه لا یدرین باثه یده چه ندنش که داشت احساس گولوس کجا خوابیده و کجا برگرد کرده حالا یک شخصی فهمیده باشه بحث میشی برمیگرده آیا میشه گفت که تعبدی هم هست حالا این در مسائل شرعی معمولاً بین علم و اختلاف هست در این زمینه که آیا اگر علتی در حدیث ذکر بشه آیا اون البت منحصر به اون مسئله هست یا میتونه علتهای دیگری هم در زنده خودش داشته باشه که آخرش برگرده به همون شرع و تعبودی خودش برگرده ما در این مسئل معمولا چینین میگیم که هم علت تعبودی و هم تعلیلی چون مسئله ای هست که با شر شناخته شده مثله ای هست که با عقل بشری فهمیده همیده نشده چون شعر اومده تعلیلش کرده و شعر اومده بیان کرده میگیم هم تعبودی هم تعالیلی هر دو تواب خب بعد میگی که ثم اکل یمینهو فی الوضوح ثمّ ترتیب، یعنی بعد از اینکه درست شد شوست، دست راستش را در وضو، یعنی اون آب وضو فرو برد. بعد میگه چی؟ ثمّ بادم با عدد ثمّ ثمّ اصل مذا ما قبلا گفتیم بشاره کردی، اصل ممید؟ آب چرخاندن در دهان بهش میگن چی؟ بهش میگن مضمغه. آب رویتان در دهانش بچرخانده که تمیز بشه. وستن شقه هر کسا شما گفتیم. هر کسا گفتیم. هم از مذیب گفتیم. شکمش گفتیم. هم از شاق و هم از هر کسا شکمش رو گفتیم. و طریقش گفتیم. بعد میگه سمه غسل وجه. غسل. اصل غسل. غسل. ریختن آب روی اون چیزی که با شسته بشه مثلا میگیم به فرض غسل تو بود این چیز را شستن یعنی آب رویش ریختن به مجرد ریختن شستن بهش گفتی میشه هرچند که خود غسل و شستن یک معنای زیادتری هم داره که مالگی ها روش انبوش میدارن و اونم که چی؟ غسل باید با همراه با درد کشیدن و لمس باشه. یعنی تنها آبریختن کافی نیست. این اختلافی که در بین علماء هست و اون چیزی که در شرق اومده و در حالی نوی اومده مقید انسان بهش بشه بهتر. یعنی همون با دست کشه. هرچند که غسلی که ما داریم شستن آبریخت روی بدن انسان انسانی بره دست برنش هم نکشه. بره توی آبیرون آب بیاد غسل داره. هرچی که دست نکشی بفتیم. لیکن خب بعض از امه سخت میگیرن و که نه باید همراه با مالیدن و درکشیدن باشه خود وجه از مواجهه میاد واجه تو فلان از وجه با در درور شدن میاد حد وجه الان اختلاف درش الان این وجه همون صورت همون شروع میشه اون چیزی که الان قول از محل رویش موها از بالای سر شروع میشه تا زیر چانه زیر چانه اون فکی روش ریش معمولاً گیرون میاد و عرض از گوش تا گوش دیگر هرچند که حالا اختلاف در این سفیجی که بین موه هست و بین گوش کلی صحیح اینه که چی کلی صورتی که معاجهه باش حاصل میشه از گوش تا گوش از دانرمه گوش تا گوش از محل ریشه مون تا زیر چانه همه شامل صورت میشه حالا اختلاف در وقت تخلیل کردن ریش ها. آب زیر ریش ها باید رفته بشه باید فرو برده بشه یا نه اختلاف در نظر علماء من هم برمیگرد اختلاف به تفصیح حدیث علامه آلبانی تفصیحش میکنه حدیث تحلیل ریش ها. ش می تحتینش میکنه ببخشیدیکی حسه و صحید هم اینه که ریش هایی که در حد صورت قرار گرفتن باید آب اون کشیده بشه اما ریش هایی که حالا ری مثل مثل ما که دست پیش و نمیشه آب صورت زیرش فرو برد دیگر مش تجر زیره دیگه اینجا انسان نیازی نیست نیاز نیاز نیاز که آب بره کنمه های ریشش آب بزور دفت تو چوش بکنه و نمیدیرم آب بزور زیرش بزنه نه. در حد تکلیف در اون چیزی که مواجهه هست در حد وجهش آب بهش بزنه روش مکت بکنه. اما تکلیف زائد لازم نیست. تو ویده ای هیچ ایلالون خب بعد از اینکه صورتشو شستن دستاشون تا آرنج شستن آرنج از دست گرفته تا اون برامدگی که بین مایچه بازو هست و بین ساعد انسان بین ذرا انسان این قسمت برامدگی بهش میگن چی؟ مرفق خب حالا اختلاف بین علماء که آیا واجب دستا مرفق شسته بشه یا نه جمهور که چار مذهب بر همینه که واجب مرفق شسته بشه وقتی که دست شسته میشه این مرفق هم شسته بشه آرنج دست شسته بشه ظفر و روایت از مالک بر عدم وجودند برعدم وجودند منشه اخلاف در کلمه اله هست اله المرفقین در آیه تغيير در حدی المرافق و ايضا مجدر آیا این یعنی برای انتهای قایته یا به معنای معهد معنای همراهی کسی که میگه به معنای همراه... همراهی یعنی این الا به معنای هم... همراهی مع المرافقین مع میگه چی باید واجبش هست بشه ولی کسی که میگه الا به معنای یعنی تو این که بردیم مثلا به فرز ما میگید. برو تا این که مثلا به شهر فلانی تا این که تا رسیدن این کلمه تا که معا... به یه برخیر انتهای غایت دیگه اون شمع شامل نمیشه الان مرافق تا آرنج دیگه آرنج خود شامل نیست تا رسیدی به ولی صحیح اینه که گفتیم این آرنجم شامل میشه ثم مسح برأسه خب بعد در اینکه صورتشون سه بار شستن دفعهشون هم سه بار شستن سرشون رو مسح میکنن حالا طريقه مسح چطوره اختلاف علما علما چطور اختلاف کردن و صحیح چیه اختلاف علما چیه؟ شافعیه میگن که قسمتی از سر مس بشه مس انجام گرفته و با و مس حدا رئسی و ای تبعیضه بعد بعد از سر، به معنی بعدی از سر، بعد از بعد بعضی از سر شسته بشه یا مس بشه دیگه مس انجام گرفته ای این مذهب شافعی ها حالا ما وقتی که امام خدای برای این مسئله میده را خواهیم بود به مزه دوم مسح تمامی اثر مذهب جمهور ال از مالکی و حنبلی ها به دلیل حدیثی که در بخاریه هست و حدیث ترین یکی حدیث الربیه بنت معوذ و حدیث عبدالله بن زید و حدیث المقدام بن عبد معذ کرر حال کسایذ اصحاب چنین روایت میکنند که رسول الله صلی الله علیه و سلام بدا بدا فاقبل بهما او ثم مدح راته بیدیه فاقبل بهما و ادبر بدأ بمغزم رأسه ومقدم رأسه ثم ذهب فيه ما إلى قفاهه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه رسول الله ما تشعر عزا وليت سرغاد كادا طبق وش سعر بعد ذبرون درس شروع بجلوب سرشون بارق عزوندان فس ما تشدوه تمامية سرع جميعرفته كفتين ستة أصحاب رواية كادا وصحيح هم همين كون فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تشكدر آیه اومده را مشخص میکنه و امسحب روزیتون را مشخص میکنه امام به قوی میگه که کمتر از کمتر از جلوی سر یعنی اون قسمتی که حالا مادون کلا هست یعنی بندازه چهار انگوش کافیه محمد بن مسلمه میگه که یک سوم سر کافیه امام لیتین میگه که بازم یک سوم کافیه ابو حدیث میگه یک چهارم کافیه حالا هر کسی ابو یوسف دانش آموز ابو حریفه میگه نه یک چهارم کافیه یک یک دو مثل کافیه هر کدوم از اینها به خاطر یک حرف ده تا مذهب آوردن این با تبعی در اثر ساز شد آیا این با تبعیه هست یعنی امام ابن قدامه در کتاب مغنیه جلد اول صفحه 112 کینی میگه می کسانی که این با را با تبعید دونستن و این آیه را ومسحو بر بروسکم را چنین فهمیدن ومسحو باید رو بروسکم این استنبادشون اشتباد چرا اشتباد چون حقیقت این با با الساقه باید یعنی تثبیتن میگه با اینکه این, این ای مس روی سر انجام پذیرفته بشه، پذیرفته یعنی انجام گرفته بشه. نه اینکه مس روی قسمتی از سر انجام بشه. مس روی سر باشه. این با به معنای روی چیز بودن و همراهی یک چیز تثبیت بشه. یعنی همراهی یک چیز قرار بگیره. مثل الان مثال میزنه. میگه وقتی که خداوند در بحث تیمون, میا... تیمون خدا من می... میگید و به وجوه کم اگر گفته بشه طبق ملتب بمس... شما فمسحو به وجوه کم دارید درست در بحث تیمون آیا کسی از شما هست حنفی ها شافعی ها فلان و فلان آیا شما میگید که این بابای تبریز صورتشو روی پیشانش مست بکنه بگید این مست انجام گرفته اگر اونجا فرق نگذاشتی روی مست سر بس اینجا هم فرق نگذارید کسی که چه کرد و چه رو چشماش مسکر، پیش مسکر، قسمتی از صورتش رو مسکر، پس باید کل صورتش رو مسکر کرده، در نتیجه که اونش صورتش رفت و هیچ اشکلی درش نیست. آیا اینجوری میگی؟ خیر. پس لازم میگه حرفتون اینی که باید اینجا هم همطور باشه ولی شما هیچ‌کدین ترجیح ندید. چون اینجا اینطور ترجیح نمی‌دید، پس اونجا هم باید همون ترجیح بده که این بابای تعویز نیست. و امام علامه لغت سیباوه از 15 وجه ثابت میکنه که این با باید تبعیز نیست بعد از اینکه مسح سر انجام شد قبل از اینکه که تر تموم بشه شکم مسح کردن گوش ها اختلاف در مسح گوش هرچند که در حدیث بعدی هم باز ابقاهد در بحث گوش بازم بیانش و مسئولش خواهد اومد لیکن اختلاف در اینه بین حنابله و جمهور در این که آیا مفت دادن گوش ها سنت یا واجبه و صحیح هم اینه که به دلیل حدیث ابن عباس که آلبانی هم تحتینش میکنه الاردنان من الرأس به دلیل تحتین این حدیث گوش از سره و واجبه که همراه سر مکنه بشه خب شایدی که شما اعتراض میکنه بگید که دلیل جمهورم طویه هست دلیل جنگور چیه؟ گفتن گوشها از سر نیستن به دلیل گفتن که رسول الله در سجده تلاوات كذي يقولون سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره سمع محله سنجار جوش در إنجاء رسول الله قلت أنا سجدك يا سورة ماذ سجد وجهي برکتی که اونو خلق کرد و گوشهاش را ازش جدا کرد، درست؟ خب پس میگم گوش جد سرعته. ولی صحیح اینکه که چی در این حدیث این گوش از باب مجاورت نه از باب نه از باب التاق نه از باب اینکه گوش از خود سرعته بلکه از باب مجاورت چون نزدیک سرعته با صورت دیده میشه. در این حدیث وارد شده لیکن از بر اینکه چی؟ طبق حدیث ابن عباس از بر که چی؟ گوشها از سر باشه و با سر مس بشه به دلیل فعل خود رسول الله رسول الله گوشها را با سورت میشستن؟ نمیشستن اگر شما بگید گوشها سورته سورت در صورت هم بشورید شما چی نینی میگید؟ نمیگید به همون اول بر میگردید که گوشها از سرم و رسول الله را با, با سرشون مستش کردن و طریقش همچین اینه که با یک انگوش و انگوشت سبابه در خود گوش برو برده بشه و با انگوشت شرد پشت دوش ها مست بشه این طریقه ایجالا معهود در مست سج دواجی للذی خلقه و شقه سمعه وبصرني که شقه سمعه این اشتقاق از صورت گرفته شده این اشتقاق سمع و بصر هر دو تا در یک جا که اشتقاقش به وجه و بر بعد دیگه درسی یعنی وشق من الوجه بصره و سمع وزن این گوش میگم به دلیل این حدیث چون با چشم‌ها هم در یک جا آمده دلیل بر اینه که گوش با چشم هر تا از سورت ولی روالی صحیحی نکلید گوش از صورت نیست از سر. خود از هم لیکن چون ادله ترتیب ترکیب چین که سورت شسته بشه و سر مبقی مست بشه ما گفتیم که چی؟ اون چی که مواجه هست شسته بشه و بقیه مست بشه. خب. این فقه های که دلیل در نمیارن نه سجده تل عباد، نه سجده سر، نه ذکری که تو های هم گشتن ماشادا خاطر همین رسولانی من یراد الله بگی خیران این فقه خود بدین یعنی تسیل خیران خیریتشو بخواهد رو فقیه میکنه فقیه فهمه انسان کشش داشته باشه، بسید نفس را با هم رد بده، با هم توفیق بده، جمبندی با استنتاج بکنه. خدامان همیشه دوست داره بنده فهمیده بشه، بنده عاقل باشه، درد داشته باشه. نه این کسان هرشی بهشون گفتن قبول بکنه. در خیلی مهمه. درد خیلی مهمه. درد خیلی مهمه. آیا در همه افاتس هسته که جود؟ خیلی پیانبر برخی میگوید دوسته دو دو سیم. شسته در همه حدیث هایی در ما این حدیث داشتیم بله چون ما گفتیم چون ما گفتیم چون گوشها ها از سرن از باب اصل با اصل در اصل دلیانده میشه جاهای عموم اومده مثل حبه چون گوش از رأسه خود به خود با خودش شامل میشه و جاهای مجزا و مرتب اومده برای که اون شخص من اون حمران داره میبینه و نقل ولی بلی که میبینی جاهایش های شخص نبینه نقل بکنه میگی دیدم که رسول الله چینین مسکه سرشو مسکه این چینین اوورد، از جلو شروع کرد اوورد و ورد به پشت از پشت به جلو و بعد دوشهاشو چینین مسکه داره دقیقا نقل میکنه اون مسکه ولی که اینجا عام ثم مسحه برسته خریصان حدیث خودانان من آیا داستان ما داره که پیان برسالسلام مدین برسید مدین رو رفت چون بیشتر امالی داره که قبلش یک داستانی هست یا یه اتفاق تعلیش انجانه خلاف در وقت این ماجرای خاصی داشته بارید که وجه شاهد درش هست یعنی خود خودانان که از رأس ثابت بشه راحتا که قصه هم داشته باشه فردی همی کنه مادامی که این شک در هست، حکم غیر از وقتی که ما بخصوص نگاه کنیم معامون باست که این مسحه به جا برائسه و در قرآن ممسحه به ربوسه کم داریم یک فعل مقیدید مطلق حدیش بر مقید یا مطلق رو مطلق ود بگیریم باست مقید رو بگیریم اون توری که تفصیلو مده چنین ماسکرد از اینجا شد که هل بفوشت بعد دوشاشو ماسکرد این خیلی مهم اكاستان. خیلی از جاها هست. میره در رسول اختنبه ها شاید یک فقید یک اوزنی داشته باشه فلانی. حالا چه ضرری بهت میشه این مزح سر رسول ها چیلین در مذهب اومد جلوی پیشانی. جلوی سر. مزح کامل بکن چه در کم یا سطره چه کم بیشه؟ خوش در تر عمرت کم بیشه؟ نمیدم اویی که سنتی داری؟ قول ان تحبون الله فتابعوني يرضكم الله هم محبت خدا شامله میشه هم روحانیت بخشیده میشه هم حسن دیگه چرا خودو محروم میکنی؟ روز قیامت چیکار میکنی؟ میای حسن دادید خوب ما نه؟ جمهور بر اینه که مستحب است حنابل بر اینه که مثلا نه حنابل وقتی که داریم میگیم حنابل امام داشتند بله میگه واجبه دیگه خب بعد این که دم قتل کل تر اللي دو بطبغاوش در شستن در این حدیث دلیل تاریخی است بر شستان پاها و اینکه آیه سریح در شستن پاها نمه روی پاها پاها باید شسته بشه و اونم سه بار تمامی اعضا ما سرد سر سه بار شسته میشه اختلاف در سر که آیا سر سه بار باید مست بشه یا ایک شافعی بر اینم که به دلیل حدیث حمران همین حدیث در وزوری دیگرش که دوبار اومده و دوبار اومده و در حدیث عام به دیگری که رسول الله دوبار دوبار یا سبار سبار وزور گرفتن در نتیجه مفهم جاییز سبار, سبار سبار یا دوبار دوبار بشه آلالام آلبانی هم در سنن ابو داود حدیث حمران که دوبار روی سر اومده و سبار تحتینش میکنه ابن حجرم میگه که زیاده اصطحه هست و مقبوله ولی صحیح اون که من به نظرم میرسه چون حدیث حدیث حمرانه چون حدیث حدیث حمرانه نمیشه که دو بشت داشته باشه در اینجا میگه یک بار همه جا اعضا داره میگه سه بار در سر گفت یک بار نمیشه که در جای دیگه بیاد دو بار و سه بار حادثه دلیلی بر نیست که دو بار روخ داده یا سه بار نتیجه حکم به شزوز در رواید حملان قویتر از زیاد سطحه بودنش این چیزی که سلیم هنالی هم ترجیح میده در کتاب, کتاب زودات الاحکام شرح عمدت الاحکام جمهور بر این هم. جمهور بر این که مرد حسد یک باره و صحیح هم همینه که مرد حسد یک بار باشه که من خودم در کتاب آداب احکام تغارد ترجیح هم چنینه. که سه بار یا دوبار مفت کردن جایزه و اونم بر اساس اینکه حدیث حمران با اون لفظی که در سنن عبی داود هست زیاده یه فتح ولی الان این چی به نظرم میرسه در بحث این مخالفت چون واقعی سوشخص نیست و نمیشه به اون اصل عام سه بار سه هم بشه کرد در نتیجه توقف و اکتفاق یک بار مرد کردن بهتره به این حدیث در بخاری مسلم داریم گرفتن قوی بهتر از اینکه یک چیز اختلاف شده درش بگیریم یه چیزی قوی هست بخاری مسلم داره یک بار مرد کرده کافیه دیگه بریم چون در آن حدیث دوبار مده یا دوبار مده شکم بدیتش نمیدیم دیگه بهتره که یک بار باشه هم به فعل خدا رسول الله باب با و هم باور گفته اینجا و در حدیث بعدی قولشان فهرست می‌کند. علیم که در این حدیث هست مستحب بودن دو دور که بعد از دو ورایی مسئله هست متعلق به جرایم نمازه. لیکن قبل از اینکه به نماز براتی شکم، شکم خشک کردن اعضای بدن بعد از چیه؟ که بعضی ها کراحت دارن نواز خوش بشه و که بهتره و هر قطره ای کپاره گناهان میشه همونگونه که رسول الله گفتن این خوش کردن چیه؟ چون که هست؟ چه حدیثی داری؟ که خوش که بحث سردی ایشکال مشرق خجل بود دیتی اگر بحث سردی است خب نداره. نگاره که انسان شکل که ضرار از خود ده بکنه از ضرار از ده بکنه بهتره خوش بکنه بلی بخاری هم بیسته لیکن الله بحث روی اینه که آیا میشه گفت سنته که خوش نکنی؟ یا خلاف سلنه تقوش کادا؟ نمیشی کب زیرا در داریم. حدیث کاریم ارتسلی سحیحی حدیثت دو هزارون اهدنو از عائشد ورهم المومنین كان للنبی صلی الله علیه و سلم خرر قتون یتنشف بها مستحب نمید نمید مستحب با لولو یکی مستحب نمیتونی بیگم مستحب یعنی کبیم که مجرد سعده رسول الله رسول الله مستحبه نمیشه گفت چون همو دوست دوستمون گفتن اومده که هم قبول نکردن وصلتشون انجام دادن عایشه پارچه میاره حاجي در بخاری هم بازن بر رسول الله ردش میکنه میگه هم لازم ندارم بر به مصلحت انسان هر مباحد انسان خاص بکنه خاص خوش نکنه و خوش کردنش دلیل بر این نیست که اجر اون کفارهی گناهان نداره اجر بر اینه که اون آبی که شستی و خوش بشی الان چه با حوله و چه با آب و چه با هر هرچی که هست با هر با بخاری هم خوش بشه چی خوش بشه چه سری و چه دیر مهم روی اون آبی هست که روی عضو قرار گرفته اون آب که چی؟ کفره ایونه خب آبی بیشتر مصرف بکنه آبی بشتری مطرف در چه در بودو چه در غیر اوزو کلن علیکو سلام در و غیر نه شده به حرام علیکو سلام اصراف کلن حرام مسائلی که جمله مسائلی که برای امروز رواند کلاس مطلقه اوز شده ماشاءالله مداخلات زیاده خب از جبنه مسئله که در این حدیث هست بحث سحباب درکت بعد روزوست آلا که شک درشت استحبابش نیست بحث حدیث بلال هم که خودتون میدونید که الله میفرماین صدای فاختو شنیدم در بهش بعد گفتن که چطور کردی که مثلا این اجر عجر و خداش یا چینی فضیلتی داری گفتن که من خوری نمی نمیکنم روزه نمیگیرم به دلیل که بعد از اون دوره کات روزه میم. بزرگیه در حضور گرفتن. که خدا بهمون توفیق بوده که چه سنت. تقریری، وا چه فعلی و چه قولی رسول الله را احیا بکنیم. اینجاست سنت تقریری که رسول الله تقریر کرده، ما اینجا هم با قول خودشون تقریرش کردن کسی دوره کات نماز نمیخونه و با خودش حرف نمیذاره. با خود انسان حرف زدن نمیذاریم. حرف زدن با خود مصره نماز یک حرف زدن دست خود آدمه انسان میتونه کنترلش بکنه یک حرف زدن نمیتونه کنترلش بکنه اون چیزی که انسان نمیتونه کنترلش بکنه سر نماز میگه الله اکبر اون چیزی تو کنه کردی این اشکال نداره لیکن، که نماز تامشو شد، برم مغازه برم دستا بخرم برم فلان بخرم برم اینجا و برم اونجا این استفاده استفاده با این فکرها و نشادادن و رها کردن سکر در نماز حرف زدن با خود در نماز تو دل انسان این انسان مواخذه میشه این حرامه بخاطر همینی حدید در صحیح مسلم داریم که اگر سر نماز وسته در شما ایجاد شد سرش رو دست چپش بکنه نفسی بکنه بعد دیگه اللهم به این نعودو من الخنزب این خنزبی یکی از شیاطینی که میاد در نماز وسته سب اندازه چه کار باید بکنیم نفس و بعد بگید بعد دو خدا پناه ببریم از شر اون شیطانی که اومده در سر نماز در دل ما مستثنا بیان داده. بس این از کارهایی که انسان باید انجام نه. نه فقط یک کمی یه کمی که الهه تاشوشی جدی نشه به قلذت، نه بیشتر یک کمی شده یک سرات دست انسان پایین میندازه، باز سرش پایین میندازه، نفس می چون باز به طرف قبل نباشه، فقط یک کمی. یک کمی که به طرف نباشه و درش شب باشه. بله، ثقینه در بحث عامه، بحث اینه که انسان این بحث را سه را گاه توکن. را چه در نماد فصل، در نماد سنت. این مزاحمت داره که مقاره شون. اگر اگر این سوره که من کردم تشویش نی. یکی همیشه انسان سر را پایین می داده، نسخ کرده یوکم، وام ندارد که هیچ تشخیشی جد نمیشه. آیا اینه خود کود لح زیاد در کلام میشه لوم؟ نه ذکره ذکر خاص نمازه برای یک حالت خاصی ایک حالت مختلفی ای مثل رسول الله میومدن مثلا به فرس حرکت خاصی انجام در رو کردن یک حرکت خاصی فعل خاصی که شامل خود نمازه مثل داده و سبابه رکود سجود از کاری که انجام میشه جز خود نمازه یک سری افعال جز خود نمازه یک سری افعال قارج از نمازه و این خود تو ببینم آیا در بیرون نمیشه گرفت چون بحث از دفع حدید منافس که ما در سر نماز جایی که شیطان مداخله میده در سر نماز اون باعث را قد بله بحث قیاس در عبادت میاد که این عبادت و اونجا عبادت نیست چیزی که نص درش نیست خب اشامل هر نوساسی میشه من گفتم یک وسعتایی که انسان میتونه قدش بکنه یک ای که نمیتونه قدش بکنه اون چیزی که انسان نمیتونه قدش یه چیزی هست که شماست اون چیزی که ذاتش خودش نیست اشکال نداره ولی اون چیزی که دست خودش خودش, خودش بس بس با دست خودش میموره بعد ازش فنا بلاچه وسعت فکر باشه و هر چیزی که باشه تحلیل و تعلیلی باشه خب اجر و پاداش شرکتی که وزی این اینشینیم بگیره بعد بیاد این چینی نماز بخونه نماز را بیسته سرکت نماز بخونه و با نفتش حرف ندنه کفاره گناه ها میشه حالا گناه های کبیره هم شامل میشه صحیح اینه که گناه های کبیره شامل نمیشه به دلیل حدیثی که در نظر مسلم داریم از سنوات الخمس و رمضان الى رمضان کفارات لما بينهن مشتنبت الكباری کفاره هست در صورتی که چی کبائر دوری بشه پس این فضیلت برای کسی که چی فضیلت برای کسی که تغییر انجام داشته داد انجام داده باشه در نتیجه با این عمل گناهانش بخشیده میشه و آمرزیده میشه حالا ان شاء مسائل دیگه هست در ضمن همین حدیث از کاری گوشی میشه جن و چون دو تا حدیث, حدیث با هم خیلی بیشتر از بوزو همین حدیث الله و حدیث دیگری که در بحث وزور هم بحث رو کامی قائم کرد و هم مسائل نواقذ وزور و مسائلی که شامل شف سبحان الله الحمدلله سبحان الله الحمدلله